بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة دي. كتاب شفعة والشفعة واجبة بالخلط دون الجواري شفعة واجبة بخلط بمخلط ودن مال دون الجوار نحن صاياقي شن أحناف در حمصاياقي حق شفعة قائلات ماتي؟ شفئه ثابت هست در هر چیزی که مشترکه و قابل تقسیمه و قابل چیه؟ وقتی که تقسیم شد مثل زمینی منو شما داریم کاملان قاتیه اصلا مرز مال منو شما از هم جدا، کاملان، تویین حق شفئه هست منو شما شاری، اصلا حق شفئه چی کجاب بیش میاد اون چیزایی که نقل نمیشن مثل زمین و اقارو اینا دووونه زمانی که من شما با هم مالمون قاطیه من و شما زمین یک زمین شریکی با هم داریم که سهممون از هم جدا نشده اینجا اگر شما اومدی سهم خودت رو مثلا نصفش مال شما نصفش مال من ولی هنو جدا نشده شما مال خود تو فروختی به یک آقای دادی من این حقو دارم که این برم از اون شخص به زور بگیرم قهرن هیچ کجا خرید قهری نیست جز در شفعه ای این یک استثنای. بد با رضایت باشه ولی اینجا نه چرا چون من اون موقع که شالیک بودن با شما شریک بودم این فلسفه شی شما موقعی که به شخص دیگه میدی حتما من نمیخوام با اون شریک بشم لزو این اگر قرار باشه شما بفروشی باید به من بفروشی نه به یک شخص جدید اگر هم به شخص جدید فروختی من میتونم برام ازش بگیرم من میتونم ازش اینو میگن من با حق شفعه ازش میتونم با حق چی حق شراکت ایقاست خب میگه شوفه واجب باخلت دون الجوار نه همسایگی چون احناف در همسایگی هم حق شفه میگند هست خب پس شفه واجب بس باخل دون الجوار فی ما یقسم من ارض او اقار درون چیزایی که تقسیم میشن از زمین یا عقار از زمین یا اقار اقار ساختمان شاملش میشه شامل, شامل زمینی که بیشه که درش بناه هست درخت هست بمثل الثمن اللذی وقع به البع واجب میشه به بمانند سمنی که معامله باش واقع شده چطوری؟ شما زمینی رو که من شما شریکی تقسیم نشده میایی میفروشی به یک شخص جدید من با همون ثمنی که شما باش معامله زادی زمین رو ازش می به ثمنی لذی وقع به البه همون که معامله باش واقع شده اذا بعدر الی طلب معالعلم به زمانی که من زود برم این کار بکنم وگرنه حق شوفه من اه اه اقدام کردم از بین البته اگر آگاه شدم نه که آگاه نشده بودم من اقدام نکردم اون موقع من مقصر ولی اگر علم داشتم که شما اینو فروختی به شخصی دیگر اینجا باید زود چه کار بکنم زود زود باید اقدام بکنم و اذا اصداق زوج و امرات پس شفع رو فهمیدی زمانی که دو شخص در یک زمین در یک اقار با هم شریکند که اون تقسیم نشده اگر تقسیم شد در فقه منهجی آورده میگه زمانی که خونه تقسیم شد یا زمین تقسیم شد و هر یکی از دو شریک ببین من مطلب منهجی رو میخونم خیلی صافش توضیح ده میگه زمانی که خونه تقسیم شد یا زمین تقسیم شد و هر یکی از دو شریک مستقل گشتند و یکی از آن دو اومد ملک خودشو به یک اجنبی فروخت کسی؟ این حق نداره حق نداره که بیاد این نصیب و با حق و ببره چرا تین الان تقسیم شده ولو این که بیگه در مرافق با هم مشترک باشه ولو اینکه در راه این زمین با هم مشترک باشه در جوی آب این زمین با هم چه باشه؟ مشترک باشه شریک مخالط بهش میدند در ادامه میگه موقع شریک مخالط حق شفعه نداره همسایی که چسبیده به طریق اولا حق شفعه چون احنا میگن همسایه ملاصق با اون شرایطی که در کتاب کتابشون هست حق داره خب. بس شفعه آسان بود نه؟ ها. حالاً،, حالا یاد جزیاتی از این مسئله رو میاره میگه و ایده اصدق زوج امراتو شخصا من دارن او اردن ففیه شفعتو به محر المثل. المثل و زمانی که مهری داد شوهر زنش را نصیبی از این، از خونه ای یا زمینی که درش حق شفع بود من و شما با هم شریکیم توی یک زمینی که تقسیم نشده من میخوام یه زن بگیرم زن دوم <تصفيق> خوب من که میخوام این کار رو بکنم از همین زمینی که من شما با هم شریکی میتخصیم نشده میان مهریش رو جدا میکنم خوب اینجا شما چی؟ تو این شما حق شفه داری؟ شما میاین مهر مثل این زمین رو و با حق شفه اون زمین رو چکار میکنی؟ برای خودت برمیداری این جمله اینو میگه میگه زمانی که صداق داد شوهر زنش رو نصیبی رو از خونه یا زمینی که درش حق شفعه بود اون موقع مهرمیسل میده اون طرف و اگر خواست البته و نصیبو میبره شریک قدیم شریک چی؟ قدیم ولا شفعه تا في الوسايا والهبات ولا شفعه تا في البئر میگه شفعه در وسايا نیست من اگه وصیت کردم در این زمین که باشوان شریکم مثلا 100 مترش وصیت کردم که مال فلانیه چون این بدون عوضه ببین در شفعه شوافعه میگن اگر بدون ایواز ملک انتقاله به شریک شد اینجا دیگه شریک قدیم حق شفعه نداره اینو در من هجیم یاره میگه فا تقل انتقل الملکو الى شریک الجدید بغیر اوزن لم یکن لشریک القدیم ان یأخونا شقصه بشفئتی میگه اگر شریک جدید ملکو بدون عوض برد یعنی از راه وسیعت اونو برد از راه بخشش بلا عوض اونو برد یا از راه صداقه اونو برد من اومدم شریک قدیم شما هستم قسمتی از سهم خودمون برو صدقه به یکی دادم شما حق شفه درش نداری تو اینجا من قسمتی از مالمو بدون عوض دادم بدون چی دادم پس میگه زمانی که شفه نیست در وصیت ها تون بدون عوضه و در هبه های بلا عوض ولا شفه فی بیر. و شفه در بیر نیست تون بئر قابل تقسیم میشه نفی درش از اون چیزای مثلا بئر و حمام از اون چیزاتی که دیگه قابل تقسیم مال و ذاکان تو شفت طول جماعتین خب میگه اگر حق شفه مال یک گروه بود یعنی مثلا به چه شک زمین مال سه نفره تقسیم نشده خب شما مال خودتو میفروشی مثلا خ ما اینجا دو نفریم که حق شفه داریم میگه و داکان تو ش تو جماعتین زمان یک شفه برای بیش از یک نفر بود برای جماعت بود تاص صبحی ها بین هم امقج تاص طبق حسه. حق شفهه دارند، اهلاف میگن طبق عدد رؤوس یعنی اگر دو نفر هستند حق شفهشون بین دو نفر تقسیم میشه. نصفش مال این میشه مثل نصفشون مال اون ولی شفهه میگن طبق حسه طبق حسه اینه که من در مثلا زمین به شکل مساوی بین من شما و اون شریکه خب اینجا من و اون شریک قدیم به شکل مصابیت کار میکنیم حق شفه داریم ولی نگه سهم من بیشتر اونه من به اندازه سهمم از اون زمین چی میبرم حق شفه دارم پس میگه اگر شفه مالی گروه بود حسه میبرن به اندازه ملکی که دارند چون حق شفه به خاطر اون ملکی که دارن شفه میکنند و این عرفه توفر حقه علی الباقین اگر یکی اومد حقشو اف کرد یعنی آقا حقشو فنا نخست از این گروه میگه حقش میره روی بقیه حقش میشه رسیب نیچی؟ اینجوری نمیشه بقیه بگن نا آقا ما به اندازه حق ملکمون میخواهیم بقیه شما نمیخواهیم خب چون مشتری ضرر میکنه شما موقعی که به اندازه سحمت حق شفعه رو برداری، بقیش میمونه رو مشتری. اینجا مشتری چی میشه؟ پس میگه اگر افکار بعضی از اون گروه حقش میره روی بقیه. و من غاب من هم کانه علی حق. اگر کسی غائب بود، اون غائبه. تو منطقه نبود، اونجا حاضر نبود. بر حقش هست ولی الحاضری اخذالجمی و حاضر باید کلش برداره. و اونی که حاضره کل اونو با چه کار بکنه؟ برداره فا اذا قدیم الغائب رجع على الحاضر بقدر حاضر بقدر حصتی منها وقتی که اون غائب اومد حاضر شد میره پوش اونی که حاضر بوده قبلا و حصتشو از اون میگیره و حصتشو از میگیره فا المات کان حقه منها موروثا اگر شخص مرد میگه حقش ارس میشه به ورثه میشه حق شفعه به ورثه میرسه در این مورد اختلافی وجود داره دو میگه مالک مالک وشافعی گفتند که شفعه شفعه به ارث میره و با موت باطل نمیشه نظریه حناف و شفعه چیز دیگه هست نمیخونه دیگه است جلوتر وان کان الشفیء طفلا او مجنونا کان للولی فعل الاحض من الاخ او الترك اگر شفی شفیون رو میگن که حق شفعه داره ها اگر شفی، اون شریک جدیدو میگن مشفوع علیه اون ملکو کد حق, شفه حق شفه داره هست بش میگن مشفوع فیش میگه اگر شفی اونی که حق داره، اونی که شریک قدیمه اگر تفل بود فیدیم تشخیص نمیده یا دیوانه بود حق تصرف نداره نینا دیگه کانه للولی فعلو الاحذ ولیش باید اونی رو که به نفعین دوتای بعد انجام بریه من الأحض أو الترك كأي أين شفئي رو بگيري بنافشي ترك بنافشي يا ترك شفئي چي شه؟ بنافشي ولو اشترى رجلان شقصا كان للشفي أن يأخذ حصة أيهما شاء اگر دو نفر اومدند يك نصيب رو باهم خريدند شفئي حق داره كي حصة حر كدام يكي از اين دوتار رو بره؟ بر داره اگر مشتری ها دو نفر بودن مشتری های جدید شریکای جدید اون شریک قدیم و شفی حق داره که حق حصه هر یک از اینا رو خواست بر داره ولو اشتر شخصا عبد اخذه الشفیع بقيمه العبد اگر خرید شخصی رو به اگر خرید شخصی رو چی یعنی شریک جدید اومد نصیبی رو خرید سهمی رو خرید به بردی او شفیعو بقیمت العبد برمیدار اونو شفیع بقیمت عبد قیمت عبد میده و زمین مالش میشه رده ردهو الب... رده او شخص به عیبین اگر دوباره اون فروشنده اون نصیب معامله رو برگردون بخاطر عیبی که ك... وجود داشت در سمن میگه رجعه به قیمت شخص دون العبد این موقع میگرده به می قیمت شخص نه برده قیمت شخصو برمیگردونه نه برده ولم تبطل شفعه و شفعه باطل نمیشه ولو استحق العبد باطلت اما اگر مستحق برده شد اون بایه اینجا میگه شفعه باطل میشه اینجا میگه شفعه چی میشه و فروشنده میره و مزنی میاره میگه رجع البای و فأخذ شقصه او بایه بر میگرده و شقص خود اون نصیب خودش رو چکار میکنه؟ بعدن ما وردی که این موزنی رو شرح داده میگه و هادا صحیحون میگه این صحیحه چرا میگه لان استحقاق ثمن یوجیب و ابطال لبه چون مستحق شدن ثمن چون ثمن اینجا خود برده بوده کی. اینو گرفته و زمینو داده اون شقسو داده میگه استحقاق شدن ثمن باطل میکنه معامله رو و بطلان معامله باطل میکنه بطلان شفعه رو و بطلان شفعه ایجاب میکنه که اون شخص چه بشه؟ باز بشه پس زمانی که دوت شریک با هم قدیم بودند و زمینو تقسیم نکرده بودند راها و جوی آب تقسیم نکرده بودند شریک قدیم و یکی از اونها اومد چیزی فروخت شریک قدیم میتونه برو اونو از مشتری جدید بگیره. ولی به شرطی که خبر نداشته باشه. اگر اون شریک اومده بهش گفته بود آقا من میخواهم اینو بفروشم. نه خریدش. خودش قبول نکرد. بعدن دیگه حق شفعه. نداره. تا اینجای کار کافیه. جزاک الله و خیره.